يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة، وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد در آغاز و بدايت سال تحصیلی هستیم شایسته استبع مناسب ميدانم که مسائلی را در رابطه با علم و دانش اهمیت و جایگاه علم و دانش در دین اسلام و نکات و توصیه‌های پیرامون همین مسائل خدمت شما نمازگزاران محترم عرض نمایم گرچه در رابطه با اهمیت مکانت و جایگاه علم و دانش بسیار سخن گفته شده و بسیار همشنیدید اما برای فتح باب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 انقدر اهمیت دارد که اولین آیاتی که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد بحث تعلیم، بحث آموزش و علم و دانش هست بحث اقرأ و خواندن و مطالعه کردن هست پنج آیه اولیهی که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد پنج آیه اول سوره علق می باشد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 آیات و یا سوره های که بر رسول الله صلی و وسلم نازل شده سوره اقره هست، سوره مدثر هست، سوره مزمل هست و سوره قلم در سوره قلم باز میبینیم الله سبحانه وتعالی اولین قسم خود را آغاز میکند الله سبحانه وتعالی در قرآن کلام الله مجید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 همون دوری که عرض کردم وقتی خلقت را و آفرینش را و حیات را الله سبحانه وتعالی مقرون تعلیم و آموزش قرار داد ما اینو میفهمیم که و این را برداشت می کنیم که علم و دانش زمان نمیشناسد و هیچ حالتی را نمیشناسد در هر حالت و در هر سن انسان باید آموزش داشت ببیند و یاد بگیرد و مطالعه بکند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 یکی اخلاق هست جز اولین آیاتی هست که نازد شده بعد از علم دانش البته اما جز اولین سوره ها هست دون عرض کردم چهار تا سوره جز اولین سوره ها بعد از اقره سوره دیگر هست سوره مزمل و مدثر و سوره قلم در سوره قلم, قلم قلم الله سبحانه تعالی فرمود نون والقلم و ما یسترون ما انت بنعمت نعمت ربک و مجنون و ان لك لکل غير ممنون و لا على خلوق عظيم جواب قسم در سوره قلم این هست الله سبحانه و به قسم به قلم قسم یاد می کند به قلم قسم می خورد ارزش علم و دانش را به ما گوش می کند اما در ادامه فرمود و ان کل علی خلق نظیم و تبر خلق خو بس بزرگ هستی یعنی بحث اخلاق اولین صفت رسول الله صلی الله علیه و رو خلق خوی بس بزرگ معرفی می کند لہذا برای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 هدف از رسالت خود را و هدف, هدف از پیغمبری خود را این معرفی می کند که من مبعوث شدن فقط که مکارم و صالح اخلاق را به اتمام رسانم و کامل بکنم بُعِثُ و لِأُتَمِمَ مَكَارِمَ اخلاق یا بُعِثُ و لِأُتَمِمَ صالح اخلاق در روایت دیگر یعنی هدف از پیغمبری مب... مبعوث شدن به اتمام رساندن و کامل کردن اخلاق هست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 اخلاقی تو مسائل مباده اسلام تو مسائل خیلی کلان و مهم اسلام که پیغمبر صلی الله علیہ وسلم فرمونه اصلا من به خاطر اون مبوض شدم و اگر نمازی هم هست قراره که اخلاق ما را اصلاح بگند اونجا پایش میلنگد اونجا کم آورد. در دروگویی صداقت ندارد خیلی مهم هست حتی رسول الله صلی اللہ و وسلم سوال کرد سالش او یا اصرق مامن آیا ممکنه دزدی بکنه آیا ممکنه زنا بکنه آیا ممکنه فلان هم انجام بدی بله او یا کدیبل مامن آیا مامن ممکن است دروغ هم بگویاد؟ قال لا هرگز دروغ نمیگوید. و دروغ نمیگویاد. با دروغ نگفتنش از نش شد که کارهای دیگر هم و اگر دروغ بگوید دست به کاری دیگر میزند. نش مسئله مهمی برای ما. ما من شیء اثقل فی میزان من حسن الخلق شما میدانید که رسول الله صلی الله علیه وسلم سنگینترین چیز در ترازوی اعمال رو روز قیامت چه معرفی می کند؟ نماز حجت؟ روزه دوشنبه و پنجشنبه، حج نه فرمود هیچ چیز روز قیامت در ترازوی اعمال سنگینتر از حسن خلق نیست رعایت کردن مسائل اخلاقی نیست ترین چیز هست خبر بدهم به شما از اون کسی که نزد من محبوب تر است و در روز قیامت در مجلس من به همه نزد... نسبت به, همه به من نزدیک تر است از همه به من نزدیک تر است روز قیامت محبوب من هست خبر بدهم چه کسی هست؟ ساکت شدن همه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دوبار یا سه بار این سال رو دوباره تکرار کرد خبر بدهم هم کسی که محبوب ترین فرد نزد من است و نزدیک ترین کس به من چه کسی هست گفتم بله فرمود احسن خلقا خلقن کسی که بهترین اخلاق را داشته باشد کسی که اخلاق یعنی دروغ نگفتن اخلاق یعنی وقت شناسی اخلاق یعنی وفای به عهد. اخلاق یعنی خوشقولی کردن اخلاق یعنی توازع داشتن اخلاق یعنی نفرت و کینه و حسادت نداشتن اینا اخلاق است. اینا مایی پیشرفت جامعه در کنار علم و دانش می شود اگر کسی مسلح به صلاح علم و دانش باشد اما از ایمان و تعهد و اخلاق برخوردار نباشد ممکن است جامعه را نابود بکند نابود بکند بشریت با علم و دانش بمب را کشف کرده بمب های شیمیایی بمب های اتمی اگر تعهد و اخلاق نداشته باشد این ماده خطرناک در دست یک انسانی که اخلاق ندارد چی می پس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 و اعتیاد در جامعه توسعه و گسترش پیدا می کند اگر معلمان خوبی نداشته باشیم رو معلمان کار نکنیم مورد توجه قرار ندیم این قشر معلمی را برای آرام کردن سالن های ورزشی از پلیس های زد شورش بعد استفاده کرد سر کوچه و خیابان پلیس های باطوم به دست باید ایستاده باشند آمار ازدواج باید آمار طلاق ببخشید آمار طلاق باید بالا برود همش برمی به این یک معلم در مدرسه مربی در خانه که مادر باشد همه این ای به اینها برمی احترام به بزرگترها باید در خواب ببینیم اگر معلمان خوب وارسته فرهیخته تربیت شده نداشته بشیم یکی از مشاورین یک صحبتی داره بسیار جالب میگه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 ولی به شرطی که همینطور هم حق حقوق معلما رو سبرابر نکنید معلمان آزمونی داشته باشند یعنی از یک فیلتری رد بخ... رد بشون و گز... گزینش‌های رد بشن روان‌شناختی. آزمون روان‌شناختی بدهند که قابلیت معلم شدن دارن یا ندارن. شرط دوم این که معلم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 خاطری خوبی از اون درس یاد گرفتن. نه اون درس زده بشه با خستگی معلم که ببینه. و شرط سوم این هست که معلمان دوره یادگیری داشته باشن. یه معلوماتی که دارن بسنده نکنه یه دوره هم برای آنها بزنن در اون دوره هم شرکت بکنن برای که آپدیت بشونند، بروز بشونند، مطالب جدید هم یاد بگیرند و از امکانات روز برای آموزش استفاده بکنن. با این شرط و شروط سه برابر هم بیشتر بکنید 20 سال بعد شما نسلی خواهید داشت که خودکفا هستند رو به توسعه هستند متعهد هستند متخصص هستند و قطعاً پیشرفت خواهید کرد اما اگر امروز پیتروشیمی وارد استان شما شود این صنعت و شما رو معلماتونم کار نکرده به همین اموال که هست پیش بروید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 اون کارخونه پتروشیمی شما اما محصولات این پتروشیمی هم با تریلی به جاهای دیگر می و اون چیزی که برای شما می ماند آلودگی و بیماری و مریضی هست دیگر خود دانید یک صحبت دیگر و یک نقطه دیگر در با نکات با نکات پیرامون معلم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 ما در مدرسه اینو آموزش رو این میدونیم که بچه ها مشقشون بنویسند بچه ها وقتی خواب بیدار میشن صورتشون رو با صابون میشویند به بزرگترشون احترام بذارند بچه خوبی باشند سر و صدا نکنند چموش نباشند سلام بکنند موقعی کسی رو میبینند این رو بچه ها فقط یاد دادیم اما زندگی کردن و مهارت های زندگی کردن فقط این هاست میگه از نفس کشیدن تا سفر کردن نیاز به آموزش دارد کل زندگی انسان نیاز به آموزش دارد و باید وارد دبستان ها شد اگر میخواید جامعه بیدانی که در حال پیشرفت هست یا نیست ببینید تو دبستان هاشون چه خبر هست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 اینا آموزش میخواد. میریم هزاران کیلومتر، 500 چهارزار کیلومتر به شما این طرف و اون طرف میگردیم برگشتیم میگم یک،, یک صفحه دو صفحه در رابطه با اون سفرتون بنویسید خلاصه میگه نمیتونم. پس چی نگاه کردی؟ چی دیدی اونجا؟ چی چیزی دیدی نگاه چشم بینا نداشتیم. نگاه خوب نداشتیم. توجه نکردیم. حتما باید طراحح بشیم که حالا مجبور بشیم خوب و سایر رو ببینیم.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 توجه و تأكید قرار گرفته که انشاء الله در خود آینده با آن خواهیم پرداخت بارک الله لی و بالقرآن و السنة و نفعنی و ایاکم بما فیهما من الآیات والحكمة اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم لی و ولوالدي و ولسائر المسلمين و و المسلمین انه جواد کریم برحمته و هو ارحم الراحمین